نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد بختم ریار شود رختم از اینجا ببرد کو حریفی کش سرمه است که پیش کرمش عاشق سوخت دل نام تمنا ببرد با وانا زخزان بیخبرت میبینم آه خزان روز که بادت گل رحنا ببرد رهزن دهر نخفت است مشوعی منزود اگر امروز نبرده است که فردا ببرد در خیال این همه لوبت به حوث میبازم بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد ترسمان نرگس مستان به یقما ببرد بانگ گاوی چه صدا باز دهد اشوه مخر سامری کیست که دست از ید بیزا ببرد جام مینایی می صد ره تنگ دلیست من از دست که سیل غمت از جا ببرد راه عشقر چه کمین گاه کمانداران است. هر که دان استرابد سرفز اعدا ببرد. حافظر جان طلبت قمزه مستانه یار خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد.